فصل سوم در پانزدهمین سال حکومت تیبوریوس قیصر، وقتی پنتیوس پیلاتوس فرماندار یهودیه و هیرودیس حاکم استان جلیل و برادرش فیلیپوس حاکم استانهای ایتوریه و نواحی تراخونیتوس و لیسانیوس حاکم آبلیه بود، یعنی در زمانی که هننا و قیافا کاهنان اعظم بودند، کلام خدا در بیابان به یحیی پسر زکریا رسید. او به تمام نواهی اطراف رود اردن می و اعلام می کرد که مردم توبه کنند و برای آمرزش گناهان خود تعمید بگیرند آنچنان که در کتاب اشعای نبی آمده است. شخصی در بیابان فریاد می راهی برای خداوند آماده سازید، طریق او را راست نمایید، در پر شوند، کوه و تپه ها صاف گردند کجیها راست خواهند شد، راه ناهموار، هموار خواهند گشت، و همه آدمیان نجات خدا را خواهند دید. انبوه مردم می تا از دست یحیا تعمید بگیرند. او به ایشان گفت ای مارها چه کسی شما را آگاه ساخت تا از خشم و قذب آینده بکریزید پس توبه خود را با سماراتی که به بار میآورید نشان دهید و پیش خود نگویید که ما پدری مانند ابراهیم داریم بدانید که خدا قادر است از این سنگها فرزندانی برای ابراهیم بیافریند تیشه بر ریشه درختان گذاشته شده و هر درختی که میوه خوب به بار نیاورد، بریده و در آتش افکنده خواهد شد. مردم از او پرسیدن، پس تکلیف ما چیست؟ او پاسخ داد، آن کسی که دو پیراهن دارد، باید یکی از آنها را به کسی که ندارد بدهد. و هر که خوراک دارد، باید همچنین کند. باجگیران هم برای گرفتن تحمید آمدند. و از او پرسیدن ای استاد ما چه باید بکنیم؟ به ایشان گفت بیش از آن مقرر شده مطالبه نکنید. سپایان هم پرسیدن ما چه کنیم؟ بانان گفت از کسی به زور پول نگیرید و تهمت ناروا نزنید و به حقوق خود قانه باشید. مردم در انتظار به سر می بردن و از یکدیگر می که آیا یه مسیح معود است یا نه؟ اما او این چنین جواب داد. من شما را در آب تعمید می دهم. اما کسی خواهد آمد که از من تواناتر است و من لایقان نیستم که بند کفش او را باز کنم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک کند و گندم را در انبار جمع نماید اما کاه را در آتش خاموش نشدنی خواهد سوزانید. یحیی با راه های بسیار و گوناگون مردم را تشویق می‌کرد و با آنها بشارت می‌داد اما هیرودیس که بر سر موضوع زن برادرش هیرودیا و خلافکاری های دیگر خود مرد سرزنش یحیا واقع شده بود، با انداختن یحیا به زندان مرتکب کاری بدتر از همه شد. پس از آن که همه تعمید گرفتند، عیسی نیست تعمید گرفت، و به دعا مشغول بود که آسمان گشوده شد و روح القدس به صورت کبوتری او نازل شد، و صدایی از آسمان آمد، تو پسر عزیز من هستی، از تو خوشنودم. وقتی ایسا معموریت خود را شروع کرد، در حدود سی سال از عمرش گذشته بود، و بر حسب تصور مردم او پسر یوسف بود، و یوسف پسر حالی، و پسر متات، پسر لاوی، پسر ملکی، پسر ینا پسر یوسف پسر متاتیا پسر آموس پسر ناحوم پسر حسلی پسر نجی پسر مات پسر متاتیا پسر شمعی پسر یوسف پسر یهودا پسر یوحنا پسر رئیسا پسر زروبابل، پسر سالتیل، پسر نیری، پسر ملکی، پسر عده، پسر قوسام، پسر ایلمدام، پسر ایر، پسر یوسی، پسر ایلازر، پسر یوریم، پسر متات، پسر لاوی، پسر شمعون، پسر یهودا، پسر یوسف، پسر یونان، پسر ایلیاقیم پسر ملیا، پسر مینان، پسر متاتا، پسر ناتان، پسر داوود، پسر یسا، پسر ابید، پسر بوز، پسر شلمون، پسر نحشون، پسر امینوداب، پسر آرام پسر حسون پسر فارس پسر یهودا پسر یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم پسر تارح پسر ناهور پسر سروج پسر رعوب پسر فالج پسر آبر پسر صالح پسر قینان پسر ار اکشاد، پسر سام، پسر نو، پسر لامک، پسر متوشاله، پسر خنوخ، پسر یارد، پسر مهلئیل پسر قینان، پسر انوش، پسر شیس، پسر آدم بود و آدم از خدا بود،